فصل هفتم فریسیان و بعضی از ملایان یهود که از اورشلیم آمده بودند دور عیسی جمع شدند آنها دیدند که بعضی از شاگردان او با دستهای شسته نشده و به اصطلاح نجس غذا می‌خورند یهودیان و مخصوصاً فریسیان تا بر طبق سنتهای گذشته دستهای خود را به طرز مخصوصی نمی‌شستند غذا نمی و وقتی از بازار می تا خود را نمی شستن چیزی نمی و بسیاری از رسوم دیگر مانند شستن پیاله ها و دیکها و کاسه های مسی را رایت می کردن. پس فریسیان و ملایان یهود از او پرسیدند چرا شاگردان توس سنت های گذشته را رایت نمی کنن بلکه با دست های ناپاد غذا می خورن. حسابشان به ایشان فرمود اشعیا درباره شما ریاکاران چقدر درست پیشگویی نموده وقتی گفت این مردم مرا با زبان عبادت میکنند اما دلهایشان از من دور است عبادت آنها بیخوده است چون راه و رسوم انسانی را به جای فرائز الهی تعلیم میدهند شما احکام خدا را کنار گذاشته و به سنت بشری چسبیدید ای. عیسی همچنین به ایشان فرمود شما احکام خدا را با زرنگی کنار میگذارید تا رسوم خود را به جا عبری. مثلا موسا فرمود پدر و مادر خود را احترام کن و هر که به پدر و یا مادر خود ناسزا بگوید سزاوار مرگ است اما شما میگویید اگر کسی به پدر و یا مادر خود بگوید که هرچه باید برای کمک به شما بدهم وقف کار خدا کردن دیگر اجازه نمیده که برای پدر و یا مادر خود کاری کند به این ترتیب با انجام رسوم و سنت که به شما رسیده است کلام خدا را خونسا می نمایی. شما از این قبیل کارها زیاد می کنید بار دیگر مردم را پیش خود خوان و با آنها فرمود همه به من گوش بدهید و این را بفهمید چیزی نیست که از خارج وارد وجود انسان شود و او را نجس سازد آنچه آدمی را نجس میکند چیزهایی است که از وجود او صادر شود هر کس گوش شنوا دارد بشنود وقتی عیسی از پیش مردم به خانه رفت شاگردان درباره این مثل از او سوال کردند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 آنچه که آدمی را نجس می‌سازد چیزی است که از وجود او سادر می‌شود چون افکار بد از دل بیرون میآید، یعنی فسق دزدی آدمکشی زنا طمع خباست فریب هرزگی، حسادت تهمت خودبینی و حماقت اینها همه از درون بیرون می‌آیند و انسان را نجس می‌سازند بعد از آن عیسی از آنجا به راه افتاد و به سرزمین سور رفته به خانه‌ای وارد شد و نمیخواست کسی بفهمد که او در آنجاست اما نتوانست پنهان بماند فوراً زنی که دخترش گرفتار روح ناپاک بود از بودن او در آنجا اطلاع یافت و آمده جلوی پای عیسی سجده کرد او که زنی یونانی و از اهالی فنیقیه سوریه بود از ایسا خواهش کرد که دیو را از دخترش بیرون کند. ایسا به او فرمود، بگذار اول فرزندان سیر شوند، درست نیست نان فرزندان را گرفته و پیش پای سک ها زن جواب داد، ای آقا، درست است، اما سک های خانه نیز از های خوراک فرزندان میخورند. ایسا به او فرمود، برو، به خاطر این جواب دیو از دخترت بیرون رفته است. وقتی زن به خانه برگشت دید که دخترش روی تخت خوابیده و دیو او را رها کرده است. ایسا از سرزمین سور برگشت و از راه سیدون و دیکاپولوس به دریای جلیل آمد. در آنجا مردی را پیش او آوردند که چر بود و زبانش لکنت داشت. از او درخواست کردن که دست خود را روی آن مرد بگذارد. ایسا آن مرد را، دور از جمعیت به کناری برد و انگشت‌های خود را در گوشهای او گذاشت و آب دهان انداخته زبانش را لمس نمود. بعد با آسمان نگاه کرده آهی کشید و گفت افته یعنی باز شد. فورا گوشهای آن مرد باز شد و لکنت زبانش از بین رفت و خوب حرف میزد. عیسی ایسا بانان با دستور داد که به کسی چیزی نگویند. اما هرچه او بیشتر ایشان را از این کار باز می داشت، آنها بیشتر آن را پخش می‌کردند. مردم که بی متحیر شده بودند می‌گفتند او همه کارها را به خوبی انجام داده است، چرها را شنوا و لالها را گویا می کنن.